مخشه 23م فردا اصری که حسن پیام آمد براش تو قیافه رفتم دست برغزه او هم توی قیافه بود گفت که لاله به تو گفته بود برو جزوه ها رو از حسن بگیر نه معلومه که نه لاله فقط گفت شماره ازت بگیرم. پس تو چی میگفتی دیروز از اینکه سر از حقهاشون درآوردم شاکی شده بود گفتم، والا چی شده؟ چندو فرقی هم نکرد؟ امروز فردا که بعد جازوها رو به هم میدادی چیه؟ نکنه ریگی به کفشتونه بعد به شوخی یک نگده اساسی به که قاب پیزیش چیک نشست آخ نگفت، اما عوضش با آرنج یکی گذاشت تخت سینم که زرتم هم قشنگ هم شد گفت فقط یه بار دیگه به لاله زنگ زدی نزدی ها. گفته باشم به خاطر شدت ضربه نفسم دوچار مشکل شده بود به سختی گفتم چطور وقتی میخوای آدم و کت وارد کنین لاله خوبه حالا اخو پیف شده گفت تو چیکار به این کاراش داری بابا جان از این به بعد ایک کاری چیزی داری به خودم بگو ره بره به اون دختره زنگ میزنی که چی حرف رو ببینید من کلان یک بار به لاله تلفن کردم که آن هم بر نداشت لاله خودش خواست به من تلفن کند گفتم چرا میخوام بخورمش خودش گفت شمارهشو ازت بگیرم بهش زنگ بزنم عجب حرفیه ها پا تو از زندگی این دختره بکش بیرون عباس حالا از من گفتم بود من پام به صد تا زور تو زندگی خودمم نیست وسط زندگی لاله چیکار میکنه من اصلا با اون دارم حسن چون میدانست که من چه ماره هفت خطی هستم دیگر با هم س دلش خیلی خون بود، ولی با هم سرشاخ نشد. هنوز ده دقیقه به پنج مانده بود که ما رسیده بودیم. خانه لاله یک آپارتمان جقد پقله بود، بالاتر از میدان گلبندک. آنجوری که حساب کردم از خانه اسکندر تا آنجا پیاده، ده دقیقه راه بیشتر نمیشد. آپارتمانش از مال اسکندر خیلی ناسازتر بود، یعنی نسبت به آن توییده که هر آن ممکن بود روی سر آدم هوار بشود، این یکی چیز خیلی شیکی بود. یک آیفون تصویری خوبی هم داشت که من برای اولین بار در تمام طول زندگیم فشارش می دادم. بلند و کشدار چون واحد لاله طبقه اول بود نیاز شدیدی به آسانسور نبود. اما حسن رو وادار کردم که حداقل یک دور تا طبقه پنجم به آسانسور برویم و برگردیم. ساختمان شش طبقه بود اما دوست نه فقط تا طبقه پنجم بروم و برگردم. اوازی یک بار هم دو بار سوار شدیم در واحد را خود لاله باز کرد با اینکه خانه خودش بود و می توانست هر جور که عشق می کند لباس بپوشد اما لباسهای بیرونش را پوشیده بود همان مانتوی قرمزی که دفعه اول جلوی آن پاساش پوشیده بود با شلوار جین و شال سفید لالا آنجا تک و تنها زندگی می کرد ولی اگر زن من بود دوست داشتم با مادرش زندگی کند اینجوری خیالم راحت است. یک زن تنهایی خوشگل توی یک آپارتمان شش طبقه چه معنا دارد؟ خانه یک خوابه بود و توی پذیرایی المانندش ده دوازده نفر روی مبل و زمین گرد تا گرد نشسته بودند دختر و پسر قاطی. هادی و باغر و سروش را می اما بقیه از دم غریبه بودند. ما که داخل شدیم همه مثل ندید بدیدها بر رو بر نگاه ما میکردند. اما چون من از حسن هم آدم جدیدتری بودم بیشتر من رو بر رو بر نگاه می کردند. هنوز دستم نیامده بود که چه غلطی باید کنم که سروش تمام قد بلند و بدو بدو من را نشانه رفت و داستان همان داستان. گفت بچه ایشون ایشور آقا هستن عضو جدید گروه و دوست حسن یزدانی. فامیلی حسن است عجیب است که تا حالا به نگفته بودم. ادامه داد که همه تو میشنسیدش. عباس تازه این هفته خریدشو انجام داده و به خانواده بزرگ نتورک مارکتینگ وارد شده اینجای حرفش همه باید میگفتند عباس خوش آمدی بعد هم به افتخارم کف مرتب میزدند همه گفتند عباس خوش آمدی و به افتخارم کف مرتب زدند اینها را دیشبش توی جزوه خوانده بودم توی دخترها یکیشان بود که اگر ذهنم جای دیگری مشغول نبود. می توانستم به مرور عاشقش بشوم. منظورم بیشتر حالت چهره است. باور کنید اینقدر قشنگ بود که آدم نمیدانست چه کار باید بکند. معصومیت کمجانی تای نگاهش بود که انسانیت را از راه به در می کرد. با همه اینها بهش اعتنا نکردم. زندگی من گنجایش دو نفر را به صورت همزمان ندارد. تا پنج پنج و ده دقیقه همین طور بازاریاب بود که مثل مور و ملخ میام. برکت کرده ها ری می کردند بیشترشان هم جوان و جویای نام بودند ولی توک آدم محسن هم به چشم میخورد. کم و بیش سیچل نفری شده بودیم که جلسه خود به خود شروع شد. همهشان یکی یک سررسی جلوشان باز بود دقت کردم حتی حسن هم یکی داشت ولی نمیدانم چرا کسی چیزی در این مورد به من نگفته بود. شاید چون درست و حسابی ازشان خرید نکرده بودم به اندازه کافی جدی گرفته نمی شدم. لاله شروع کرده بود به نتخ کردن. خیلی محکم و بیشوخی حرف می زد. اما هنوز همه نظرم ناز می آمد. در مورد اینکه چرا نباید تنبل بازی از خودشان در بیاورند و اینکه قفلت موجب پشیمانی است حرفایی زد. جمعیت هم مثل چی یاد داشت می کردند. می توانستن خیلی خیلی مهمش را حفظ کنند. یا یعنی اینکه یکی بنویسد بعد بقیه ازش بگیرن اما مثل اینکه ترجیح میدادن همه همه چیز را با هم بنویسن که مبادا نوکتی از قلم بیافتند لاله گفت این کار یه کار جدیه بچه‌ها با مسمس و موسموس موسو امروز فردا کردن و پشت گوش اندازی کاری از پیش نمیره توجه میکنید اول باید این کارو جدی بگیرین تا بعد براتون سوداور باشه نه اینکه اول بخواید سوداوری کنید تازه بعد جدیش بگیرین اگه کسی میخواد توی این بازی به موفقیت برسه باید مثل یک سرباز گوش به فرمان دستوراتی باشه که بهش میدن. عین همان حرفی بود که آن روز جلوی در پاساج طلا در گوشم خانده بود. ولی خودمانیم عجب مجلسی گرم کرده بود. کولاک. حتی من هم که تازه همین دیشب فهمیده بودم چه رکبی از دستشان خوردم باز حواسم به حرفهای حرفای لاله رفته بود. بقیه هم هرچی که به نظرشان جالب توجه میآمد می, می نوشتند یواش یواش حادی و باغر هم خودشان را نخود آش کردند و به نوبت وسط حرفهای هم پریدند هادی بدک نبود اما باغر کار را به قول معروف ترمال کرد رفت کارش همش می گفت ما میتونیم می می می می می می می ما اگه ب ب بخوایم میتونیم ما, ما, ما هممون میتونیم می کار نشد نداره ما ما, ما, ما می, می, می, می کنیم و از اینجور چیزها بیشتر داشت جو میداد اما خوب که تو بهره حرفاش میرفتی چیزی توی چنتش نبود باز توی جلسه قبلی خیلی خوشگلتر حرف میزد. سروش هم چهارزانو نشسته بود و هر از سرش را می جنباند که یعنی نظر او هم همین است. به ساعت دیواری نگاه کردم. ساعت شش و رب شده بود. ینقدر حرف‌های قشنگ قشنگ می زدن که نفهمیدم ساعت چه گذشت. فقط ای این بود که بدجوری تنگم گرفته بود. پدر و پسر هیچ کدوممان وسانه‌ی درست حسابی نداریم. منظورم این است که بابام هم همین است. توی سرما بدون دستشویی پس می‌افتیم. اما شرایط جوری نبود که بتوانم برای غذای حاجت جلسه را قطع کنم. چپ می جنبیدم حواس همه پرت من می همینطور حرفها را بین خودشان عوض بدر میکردند تا اینکه بالاخره برنامه کارشان تغییر کرد. باغر از هادی و لاله رخصت گرفت و به جان بقیه افتاد. این کار را کرد چون از لحاظ درجات مخصوص بازاریابی زور لاله و هادی به باغر می چرم. واغر یکی یکی همه را به خط کرد که ببیند توی هفته گذشته چه کارهایی از هر کدامشان سر زده است. آنهایی که تیرشان به سنگ خورده بود مثل مادر مرده ها حرف میزدند و دلیل پشت دلیل که فلان و بیسار ها چقدر هم از لیدرها بد و بیراه می شنیدند. حتی آن دختری که قرار بود عاشقش بشویم هم, هم نتوانسته بود کسی را تور کند. می گفت این هفته دوست من برادرمو پرزنت کردم. افسانه رو هم دارم پیگیری می کنم تا حالا که جوابش مثبت نبوده دارم روش کار میکنم این برای هفته بعد وارد بشه مننی و برادرش رو که نمیدانستم کدام خریند اما در مورد افسانه داشت راست میگفت وقتی میگفت دارم روش کار می کنم، واقعا داشت میکرد چون تنها کاری که بازاریاپا یا پا خوب از عهدش برمیآیند این است که روی آدم کار کنند باغرد داش یکی یکی همه را به چهار میخ می هیچکس کس نمیتوانست از زیر دستش در برود آن وسط یک پسری بود که خیلی باش حال کردم. با ازش پرسید. تو, تو چی, چی, چی کار کردی؟ اشکان. با سرام به همه بچه ها و تشکر از بارستری سریا که خیلی برای من مایه گذاشتن. والا راستیاتش هیچی. هیچی؟ هی هی یعنی چی هیچی؟ هی این هفته بابا مریض بود بردیمش دکتر یه یه هفته تموم داشتی می, می, می, می بردینش دکتر؟ نه یه روزشو خب, خب بب بقیه هفته رو چی کردی؟ هیچی چ چرا؟ آخه همه پریزنت هم همون روزی بود که بابا مریض شد بردیمش دکتر م م مگه کس دیگه ای نبود ب بابا رو ببره؟ تو این هفته باید پنج نفر رو پرزن میکردی. بله. ایشالا از این هفته با قدرت شروع میکنم. الان سه سه هفته است که کدري همینو میگی آقای اشکان خان. این هفته که باباد مریض بود. هفته قبلش هم که مادر بزرگت مرده بود. هفته قبلترش هم که گفتی عروسی خوهرمه به بعدش هم که فهمیدم اصلا خواهری نداری حال آمدم عجب آدم حقیقی بود من با این دب کبکبه هم باید جلوش لون می انداختم. این همه هم که خالیبن تشریف داشت ولی باز از رو نمیرفت رفت در آمد که اونو که حواسم نبود عروسی خالم بود اشتباهی گفتم خواهرم. باغر داغ کرد در, در هر صورت من نمیدونم اگه هفته بعدم همین ماجرا باشه دی دیگه حمایت ما را نداری تو, تو چی حسن؟ تو, تو چی, چی, چی کار کردی این هفته؟ حسن از بچه های دست باقر نبود. اما با دست از سر او هم بر نداشت حسن بادن شد زانو نشست و گفت والا من این هفته با کمک با موفق موفق شدم یه ورودی بگیرم به من میگفت ورودی توف به معرفتت چند تا پرزنت هم دارم که این هفته باید برگزار کنم و حرفش را که زد همه تشویقش کردم مثل چی براش کف میزدند من با اینجور مسخره بازی اصلا میانه ای ندارم برای هر کسی که ورودی گرفته بود کف و سود خرکی بود که می‌زدن ولی مثلا برای اون دختری که داشت روی افسانه کار میکرد تره هم خورد نکردند. تازه باغر آنجور چپ چپ نگاهش کرد. به نظر من آن فلک زده هم زور خودش را زده بود. حالا مال یکی میشود مال یکی نمیشود یک روز هم هست که او 5 تا 5 تا آدم شکار کند. ولی همین حسن مثل لوله ای آفتابه بنشینه از کس و ناکس تو سری بخورد. آن وقت روسیاهی به زغال می آدم نباید کاری کند که فرد و روز اسباب شرمندگیش بشود وقتی همهشان به باغیر جواب پس دادن از سر نو یکی یکی در برابر جمع تعهد دادند که میخواهند برای هفته آینده چه کار کنند هرکی هم که هرچی می گفت زودی بقیه یادداشت میکردند که هفته بعد سر پل خربگیری مچش رو باز کنند من جای آنها بودم قولهای گند گنده گنده نمیدادم که هفته دیگر نخواهم مثل آن پسر اشکان آنجور خودم را به موش مردگی بزنم و ننه من قریبا بازی در بیاورم. قپی زیادی آدم را به خنسی میاندازد. نوبت به حسن رسید تعهد داد که ظرف هفته بعد آموزش من را تکمیل کند و چند نفر دیگر را هم توی گود بکشاند. فکرش را بکنید. حسن کچول داشت تعهد میداد که توی یک هفته من را آموزش بدهد. کاری که الان سال هاست مامان با کمک کل خانواده نتوانستند از پسش بر بیایند حالا این نیم وجبی میخواست یک هفتهای سر و تهش را هم بیاورد لاله آخر از همه بند کرد به من گفت تو چی عباس؟ از فشار دستشویی دیگر داشتم آلابولا بولا میدیدم گفتم من چی؟ برای هفته بعد میخوای چیکار کنی؟ میرم زیر دست حسن آموزش میبینم در کمتر از یک ثانی هرچی که گفته بودم توی سر رسید هاشا نوشتند بیشرف از یک حرف معمولی یک سند تاریخی میسازند. لاله گفت خوبه پس برای هفته بعد آموزشات رو تکمیل میکنی که عقب نمونی نظرش این بود که اگر آموزش هام رو تکمیل کنم عقب نمیمانم حادی هم درآمد که جرسه بر و ها سر رسیده تم هم باشه؟ مثلا میخواست یک دستوری به داده باشد. از لحنش پیدا بود. جلسه چیزی در حدود دو ساعت طول کشید و من دیگر داشتم منفجر میشدم. به محض اینکه ختم جلسه اعلام شد از حسن پرسیدم دستشوی کجاست هست. نمیدونم. مگه تا حالا نایمدی اینجا؟ چرا ولی توش دستشوی نکردم؟ خب از لاله پرس چرا خود نیم پرسی؟ دوتا آدم گنده توی یک آپارتمان چل متری دنبال دستشویی می گشتی. خودم چشم چرخاندم. دستشویی را دیدم. حساب کنید دستشویی خانه را کنار به کنار آشپزخانه درآورده باشند. آن هم چه؟ آشپزخانه اوپن. کار من که کاملا تمام شد جمعیت داشتن یکی یکی از در می بیرون. چند نفری هم دو به دو یا سه به سه سرپایی مخم را کار گرفته بودند. توی کوکشان نرفتم ولی با جزوهایی که دیروز از این مارمولکها به چنگم افتاده بود خوب میدانستم که دارن در مورد چی حرف میزنند لاله از آشپزخانه بیرون آمد و گفت خوب اباس آقای ما چطوره حسن تا این را شنید مهلت نداد جوابی چیزی بدهم فوری از کنار دست هادی و باغر پیش ما آمد نمیدانم این پسره چی توی من دیده بود که این همه محدودم میکرد به لاله گفتم من که هنوز خریدم انجام نشده لاله خانم چطوری برم آموزش ببینم حسن به جای لاله گفت شما که داری جلو جلو آموزشاتو میبینی که منظورشان جزوهایی بود که به شیوه خودم از دستش درآورده بودم لاله هم گفت نگران اون نباش موردش حرف میزنیم تو از همین امشب آموزشاتو با حسن شروع کن یا خدا حتی فکرش رو هم نمیتونستم بکنم که حسن کوچول به اسم آموزش یک هفته تمام بقد گوشم بهره طویل بخواند. اگر مثل مجسمه فرعون کنار دستم وانایستاده بود قصد داشتم به لاله پیشنهاد کنم که خودش زحمت آموزش هایم را برایم بکشد. جوری هم پیشنهاد می دادم کهنانو توی کار نیاورد. حسن برای اینکه صحبتم با لاله گل نیندازد دست چپم را از آرنج گرفت و یک تن از همه جنب خداحافظی کرد و یک جوری خیرکش من را از در بیرون با. فقط رسیدم که از دور یک دست برای لاله تکان بدم وگرنه آنجور که دلم میخواست خدا حافظی از کار در نیامد مقاومت خاصی که نکردم ولی اگر شما حالا و وضع من را میدیدید می‌فهمیدید که دارم با نارضایتی عمیقی از آنجا میروم. برگشتنه حسن حرفهایی برایم زد که هیچ وقت ازش نشنیده بودم. حتی دیشب توی جزوه هم یک کلمه در موردش ننوشته بود. معلوم بود که دارند گاماس گاماس من را خودی به حساب میآورند قبلا هم گفته بودم به محض اینکه دستت با این جماعت توی یک کاسه برود تمام زورشان را می زنند که یک تخم جن خوب ازت بسازند که بعدها بتوانند بهت افتخار کنند حسن حرف می زند. اما من آنچنان در بند حرفش نبودم بیشتر حواسم لنگ لاله بود یادم آمد که بهم به گفت نگران اون نباش در موردش حرف می زنی. فقط من خاک بر سر اشتباهی که کردم یادم را ازش بپرسم دقیققا کی می در موردش حرف بزنیم. معظورم این است که خیالم را تخت نکرد که میخواهد بهم تلفن کند یا اینکه تا جلسه بد باید صبر کنم. برای همین تصمیم گرفتم خودم بهش تلفن کنم. همین کار را هم کردم. حدود ساعت هشت، هشت و نیم رسیدیم. حسن جدی جدی میخواست از همان شب آموزش را شروع کند اما بهش قول شرف دادم که اگر، یک امشبه را دست از سرم بردارد، از فردا صبح مثل یک سرباز وطن گوش به فرمانش خواهم بود. دست به سرش کردم و دویدم بالا که تلفن بزنم که دیدم ای دل قافه. شیما و شاباجی توی اتاق وسطی هم. تلویزیون هم روشن. حالا تلویزیون داشت چی پخش میکرد خوب بود؟ کلاه قرمزی و پسرخاله. خاله. نمی کنن یک حالی به ملت بدهند دوتا چیز پدر مادردار پخش کنن. صد بار تا حالا این کلاه قرمزی رو پخش کردند از رو هم که نمیروم این دوتا هم برزده بودم به تلویزیون حالا باز خواهرم را بگویید یک چیزی شاباجی به جای این کارها باید بلند شود تا میتواند برای خانه ابدی چیز ذخیره کند. گفتم شاباجی پایین کارت داشتن کینه؟ نمیدونم همون زنه که همیشه میاد واسه روزه دم در بود کی؟ بلهخ محمود؟ آا آره بگمونم. همون که تو پولو کتاهه. برای چاخام پاخان کردن همیشه خدا حاضرگر آقام تا چاقو میسازم بیدسته <تصفيق> شاباجی هم دیگر گوش نکرد چی میگویم بلند شد چادرش را یک شاخ انداخ سرش رفت پایین. به شیما گفتم برو بالا منم الان میام کجا میای؟ میام پیشت با تو کاری ندارم برو بالا بازی کن بازی نمیخوام میخوام فیلم ببینم تلویزیون رو نگاه کردم تازه کلاه قرمزی سوار اتوبوس شده بود که بیاید تهران پیش آقای مجری فیلم تا چهار ساعت دیگر هم تمام بشو نبود بهش تو بیدم. برو بربت میگم چگرم کباب شد تفلکی سرش را پایین انداخت و رفت داشت گوله گله اشک میریخت اشک عشق رو که ندیدم ولی همیشه وقتی سرش را پایین می و میرود گله گله اشک میریزد وقت نبود فوری شماره لاله را گرفتم خیلی زنگ خورتا برداشت سلام کردم سلام داشتم بگویه سلام عباس جون رسیدی چه زود اما فقط سلام کرد گفتم عباسم شناختی؟ آره عزیزم شناختم خوبی؟ اگر دوباره عزیزم را نگفته بود مثل بلبل برایش حرف میزدم اما افسوس که این نقطه ضعف لعنتی دست از کله من بر نمیدارد گفتم خوبم خوبم کاری داشتی؟ بگو کاری نداشتم کاری نداشتی؟ پس باست چی زنگ زدی؟ یعنی کاری که داشتم فقط نمیشه بگم با خنده گفت طالت خوبه؟ یعنی چی که نمیشه بگم؟ شدنش که میشه ولی تلفنی نمیشه در کن زر میزدم غیر از تولید مثل و دعواهای خیابانی تقریبا هر کاری را می شود تلفنی راه انداخت گفت موضوع چیه؟ نه باید حضوری ببینم اطلاله هر اولاغی بود میفهمید که باید ریگی به کفشن باشد گفت در مورد چیه؟ خواستم بگویم که مسئله به باقیمانده پول خرید مربوط می شود ولی مثل سک ترسیدم که بخواد تلفنی قضیه را حل و فصل کند گفتم حالا تو بیا میفهمی در مورد خودمه خود خودم نگران nee, نباش یه چیزهایی هست که باید بدونی جا خورد با این حرفها در دهان هر دختری را میشود بست یعنی اگر خیلی حالیشان باشد جلو اینجور حرفها ها وا میدهند ردخور ندارد گفت باشه تو این هفته قرار بذار همو ببینیم راحت‌تر از آنی شد که فکرش را می‌کردم. اگر می‌خواست می‌توانست اینقدر ناز خرکی بیاید و قتی قرشمال بازی در بیاورد که من را از کرده پشیمان کند. گفتم فردا خوبه فردا. فردا که نه. فردا وقتم پر پره بذار واسه یه روز دیگه. گفتم که بازار یاب‌ها یا وقتشان پر پره است یا به طور کلی بیکارند. گفتم پس فردا خوبه؟ پس فردا پس فردا که یک شمبه سال تحویله سال تحویل آخرای شبه کارم زیاد تون نمی یکشنبه یک یکشنبه. میدونم یعنی میگم ساعت چند ساعت دو رأس ساعت دو اصلا نباید دیر کنیم متوجه میشی که منظورم چیه در اصل همینجوری یک چیزی پراندم ساعتش هیچ فرقی به حالم نمیکرد. گفت باشه ساعت دو سر ساعت دو خواستم بهش بگویم در این باره با حسن صحبتی نکند ولی چون مطمئن نبودم این کار را برایم میکند یا نه حرفی نزدم گفت راستی ساعت آموزشاتو با حسن هماهنگ کردی صدای بسته شدن در کوچه به گوشم خورد وقت زیادی نداشتم گفتم سر ساعت دو شنیدی من خودم بهت زنگ میزنم جواب منو ندادی آموزشاتو رو هماهنگ کردی یا نه من وقت زیادی ندارم لاله اگه همین الان قطع نکنم تو دردسر بزرگی میافتم چی داری میگی؟ کدوم درد سر؟ دختر حرف سرش نمیشد گفتم هیچی یه مسئله خانوادگیه پس فردا ساعت دو منتظرتم من خودم تماس میگیرم و فلنگ را بستم اینقدر حال شاباجی بودم که یادم رفت بگویم سر ساعت دو کجا باید باشیم چه اهمیتی داشت